مدح مدح و ستایش کرد مء صاد یصرفو می پردازد خوشحالم کردی مدح شاعر احد الملوك فأمر له الملك بمئة دينار ثم امر الخازن بأن لا يصرفها وحين شاعر الشاعر و عن السبب قال اسعدتني بكلام فاسعدتك بكلام شاعری یکی از پادشاهان رو مدح و ستایش میکنه پادشاه دستور میده صد دینار بهش بدن بعدش به خزانه دار میگه که این مبلغ رو به شاعر نپردازه و وقتی شاعر از پادشاه دلیل این تصمیم رو میپرسه پادشاه میگه تو مرا با سخنی خوشنود کردی من هم تو را با سخنی خشنود ساختم